بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خب دوستان خیلی گفتن که یه تحلیلی داشته باشیم از این اتفاقات اخیر سوریه خب ما خیلی خلاصا مفید ارز میکنم من تقریبا من خودم الان دو سه روزه که از سوریه برگشتم و درمان جز نفر تا آخر بودیم که توستان همس سه روز مقابد کردیم با دوستان و بچه چه مقابد و این این سه روزه هی hey, دشمن میباختش اوستان و همز دست دشمن تحریرش شام خب دروغ بودش بچه ها بایستن مقامت کردن ولی خب آخر سرش نشد ببینید من از موقعی که بشار اسد رفت به روسیه رو براتون تو میگم بشار اسد سه روز رفت روسیه روز دومی که بشار اسد توی روسیه بود ترکیه با چراغ سبز اسرائیل که همزمان با آتشپس لبنان بود یه حمله شروع کردن طرف ادلب به سمت حلب حلب یه روستایی نام شیخ عقیل جایی که شهید ابراهیم باقل عزیزمون سال 98 به شمادت رسیدن به اونجا زد اونجا یه لشکری بود به بنامه 47 برای جیش بود در جیش سوری بود ارتش بود اینا آش با جاش برگشت اقب یعنی کلن برگشت اقب از همونجا شروع شد و زدن یکی یکی به خطا ببینید خط اول در تمام استانا دست خدمه شما ارز کنم در حلب مخصوصا دست جیش بودش جیش سوری ارتش سوری دیگه به ما معمولیت خوردش که خط اول سقود کرده و باید سریع برید اون رو محور تشکیل بده اینا ما دیگه حرکت کردیم به سمت محور ادلب حلب محوری که حالا گستاهایی که هستش یکی یکی با یه چیز مواجه شدیم دیدیم که ارتش سوریه باورتون نمیشه به صورت انگار پیادرویه اربعین که نگاه میکنی همینجوری نیوای ارتشی دارن برمیگردن با سلاح و مهمات با زرهی توپ و تانک و همه چی همه چی خدایا اینا چرا دارن برمیگردن یعنی حالت کودت های نظامی به قول معروف از قبل تنین شده تمام عمرای ارتش همه اینا زد و بند کرده بودن و کشورشونو فروخته بودن ما هم خبر نداشیم که اینا زد و بند کردن و تو پرانتز بگم تمام جاهایی که ما رو زدن تو سوریه همین عمرای ارتش مختصات ما رو دادن جاهایی رچه که ایرانی ها بودن انوارا ساختمونا میامدن تو شهر حلب میچرخیدن میفهمیدن که ایرانی ها کجا خونه اجاره کردن و میدادن دیگه می نقطه ها رو میدادن و اسرائیل هم میزد و شما تقریبا هر دو هفته میدید ما شاید ایرانی داشتیم توی سوریه از این بگذاریم پنتزو ببندیم اومدیم تو خط اول مستقر شدیم یعنی خود بچه های ایرانی و یه عده کمی از بچه که دیگه با قول محبوب بچه لبنانی که داشتیم و یه عده کمی بچه هشت و شعبی با قول بسیج مردمی سوریه که بودن که ما کار کرده بودن چند ساله با اینا خط تشکیل دادیم و با جلوی دشمن بایست دیم. یک روز دو روز دشمنی که با دشمن سال 94 رفق و فرق داشت سال 94 ببینید الان میگه چرا سال 94 شد بایستیم جلوی اینا اما خب چرا الان نشد ببینید اون موقع جبه مقابت بچه های ایرانی بودن بچه های پاکستانی بودن بچه هشت و شبیه عراق بودن بچه های فاطمیون بودن خدمه شما آرزم که خود سوریا بودن جیش بود یعنی جیش سوری کنار ما وایساد پدافنده هوایی خدمه شما که همه اینا بعد تعداد زیاد یعنی تعداد نه پونست نفر نه به قلوبه رو نفر یعنی نه هزار نفر نه دو هزار نفر نه ده هزار نفر یه تعداد بالایی ما خب مقاوت کردیم و الحمدالله پیریزوی داشتیم که هلا بالاخره شهیدم که دادیم و این که بگیم آقا چرا الان نشد واقعا ببینید فرماندائی ما واقعا درست عمل کردند و حتی درخواست دادن شبی عراق وارد بشه دولت عراق قبول نکرد یعنی با, دست با یه دست رفق نمیشه جلو سیل رو گرفت یه سیلی را افتاد از مسلحین از دشمن قریب به دیویس هزار نفر مسلح این که دارم به شما میگن مسلح بچه های نظامی فیلم های اینا رو نگاه کنند ببین تمام جیب خشاب اینا تمام سلاح اینا تمام آمریکایی تمام مجهز ببین پهپاد وقتی سر... بالا سر ما تو همس اومد بالا پهباد تمام اوکراینی بودش برقال های پیشرفته ترکیه پهباد های پیشرفته اوکراین یه جنگ تمام ایار یه سیلی را افتاد تو کل استان ها 94 اینطوری نبودش که بگیم 94 تو کل استان ها ما درگیر بودیم نه تو کل استان های سوریه یعنی پشتر هم حلب پشترش هما پشترش هومس دیر و زور نمیدونم در آ نمیدونم سویدا دمشق همه جا همه جا در عرض این که دارم به شما میگم چهار پنگ روز جوری به قول ما خورد به هم که در بازم در کنار این تحریر و حالا میگن جفت و نصره در کنار این جفت و نصره خیلی از متعصبین داخل استانها بودن که با اینا همراه بودن یعنی ارتش پیاده اینا بودن و مسلح بودن داخل مثلا میگم ما توی مهور حلب توی خط داشیم می جنگیدیم با جفت و نصره به ما گفتن آقا لجنه امنیه ارتش که بچه های ایرانی داخلش بودن سقوط کرده حالا 40 کلومت اغلبتر داخل شرفه کنید توی خط داری می یه دفعه میگن آقا داخل شهر سقوط کرده که شهید هاش هاشم عزیزمون از فرماندهای های خوب بودش ایشون شهید شدن داخل خود پردگان اصلیه ارتش توی خدمت شما عرض کنم که حلب حالا جالبشینه مثلا چند تا اتاق اون ورتر ما روسا بودن حتی یه دونه تیر به اتاق روسا نزده بودن مسلحینی که ریخته بودن داخل لجنه امنیتی حلب با این اوضاع و احوال یعنی داخل شهر ماشین ماشینای انتحاریشون اومده زده رفتن داخل زدن حاجاشمینون شهید کردن ما هم بیس کلومت سی کلومت تو خط داریم می جنگیم. پشت سرمون این اتفاق افتاده و یه سیل جمعیت زیادی از شهر دارن فرار می کنن. جوری که این خیابون اصلی حلب سمت اسریا نزدیک چارده 15 ساعت فقط ما توی ترافیک بودیم یعنی مردمی که داشتن فرار می از ترس این جبحت و نصره حالا بگذاریم حلب دیگه سقوط کرد دیگه روز سوم بود که دیگه ما گفتن که آقا بیایید فرودگاه حلب ما هم خود فکر کردیم مثلا پروازی چیزی هستش اما خب پرواز ندادیش دیگه ما با ماشین به سمت اسریا که ما رفتیم حالا اینا رو رفقا میتونن به سمت شرقی ما رفتیم میتونن نقشه نگاه کنن بگذاریم استان حما شد استان حما درگیر شدن بچه همین حرکت حلب تو اونجا انجام دادن اونجا دفاع کردن بازم دوباره ببینید توی هما تمام اخوانون مسلمین یعنی خانواده های مسلحین تمام توی هما هستن یعنی فکر نکنید که دشمن دیوی سی هزار نفر زده توی استانها خودش و خودش بودن. نه مردمی که با اینا بودن و مسالحه کرده بودن سلاح زمین گذاشته بودن اما تا دیدن جفت و همه سلاح گرفتن در کنارش هم رفقات شما تو هر کشوری باشید اگر ارتش اون کشور نخواد با شما همکاری کنه دولت اون کشور نخواد با شما همکاری کنه و در عوضش برعکس بخواد خیانت بکنه و شما رو به دشمنها بفروشه هیچ احد و نمیتونه اونجا وایسه این که آقا داغش کنیم بگیم اگر حاج بودش اینطوری میشد اونطوری میشد معجزه میشد نه بله آقای اونی که صدای منو میشنه سال 95 که خانتومان سقوط کرد خلصه سقوط کرد الهی سقوط کرد آیا حاج قاسم زنده نبود حاج بود این شهر رو سقود کردن حاج بود این شهر وقتی که یه سیلی را میفته اون سقوط خانتومان بچه که تو بودن میدونن دیگه نزدیک پنیل و تا فقط انتحاریت شدید اومد نزدیک چند هزار تا فقط زدن تو که بچه مازندران شهید شدن اونجوری مزدومانه جنگیدن تا آخرین تیرشون حالا بگذریم این بیرون گود نشستند و گفتن لنگش کن خیلی راحته شما خود وقتی داخل گود باشی دیگه من همیروسان آجنسی دیگه داخل گود بودم دارم برای شما تعریف میکنم دیگه من خودم آدمی هستم که معروف هم که یعنی سرم درد میکنه اصلا برای این کار من روی ویلچر هم جنگو نکردم این که بگن که آقا بچه ها ترسیدن یا خدای نکرده ما سوریه رو فروختیم ما نه تهی بیاز بودیم نه سر بیاز بودیم این که ما اطلاع داشتیم بله ما اطلاعات داشتیم از سه ماه قبلش گفتیم آقای ارتش آقای دولت اینا دارن تجهیز میشن اینا میخوان بزنن به خطا هی گفتیم ای اینام گفته ما آماده ایم آماده ایم آماده ایم نگو اینا زدابند کردن بستن با دشمن آمریکایی اماراتی و همه چی دادن رفته خدم شما ارس کنم که اینطوری شد دیگه روز آخر توی هومس بودیم که دیگه اونجا هم بچه های دفاع جانانه کردن رفقا حالا گذشته دیگه من دارم میگم باورتون نمیشه رو اون پل خمس به سمت ترتوس من یاد بچه خاکریز زده بودن یاد اون پل اهواز افتادن خوزستان که یه عکسی از آن پنی نفری که روی پل هستن و معلوم نشد چی شد آخر سبب وضعیتشون قریبان و مظلومان جنگیدن بچه های ما بچه های خود ایرانی ما اونجا صفت تشکیل دادن و جنگیدن مجروح دادن یه حالتی که به شما میگم یه دفاع آشورایی واقعا اونجا بچه ها کم نزاشتن فرمانده و کم نذاشتن و رفقا اینو من به شما بگم قرار بود قرار بود اینو نقشه کشیده بودن که ما نیرو اضام کنیم حالا ما از ایران مثلا 5000 هزار تا نیرو اضام میکردیم بسیجی و پاستار و هرچی هرچی ارتشی و هرچی ما اضام میکردیم اصلا ده 10000 تا ده هزار تا کجا هواپیمایی های کجا ترکیه نمیدونم پهبادای ترکیه کجا همه اینا رو بذاری کنار قرار بود اونجا بشه مقتله بچه های ما اگر هشت شبیه میامد همه کشته میشدن اگر زینبیون میومد همه کشته میشدن دیگه ما چیزی نداشتیم یمنی ها میومدن کمکمون همه کشته میشدن یعنی اونجا رو ما برای ما تله کردن که بچه های ما بیان اونجا اعزام بشن و همه رو بزنن نابود کنن الحمدلله فرماندهای ما خوب تصمیم گرفتن درست تصمیم گرفتن اصلا احساسی برخورد نکنید آخ خون شهدای ما هدر رفت ما اونجا نمیدونم حرمین الان با خاک یکسان میشه فیلم بگیریم گریه کنیم توی فیلمات بگیم آی بی بیبی جان، این حرم آخرین باری که ما داریم حرم شما رو می‌بینیم. همین امروز نماز جماعت خوندن تو زینبیه. همین امروز تو حرم حضرت زینب نماز. این حرفا چیه دارید می‌زنید؟ بله یه سری هستن افراطی هستن، زدن چهار تا فرش حرم رو قلم و آتیش زدن. یه حمله کردن به کنسولگری ایران، سفارت ایران توی سوریه یه سری وسایل بردن. بلی، اینجور آدم‌ها هستن، نمیگم نیستن. اما که بگیم خون شهده های ما هدر رفت یعنی چه حرفیه داریم میزنیم امام حسین با هفته دو تا تو تو یارش توی کربلا مصلح شدن ما بگیم آقا پس امام حسین نوز به الله خونش هدر رفتش حضرت زهره تنها بایستادش کنار امیر المومنین آقا امیر 25 سال خونه نشین شدش از دست این دشمن پس بگیم آقا خون حضرت زهراد هدر رفتش آقا مقداد چرا شمشی رو نکشید بزنه؟ خب مقداد اونجا بودش اما چی؟ چشم تو چشم آقا میرن و دست به قبضه بود ممعد آقا منتظر کلام رهبرمون دستور رهبرمون باشیم و سلام نامتمم اگه اینطوری بودی موفق میشه. اما اینکه بخوایم کاسه دختر از آش بشیم این فایده ای نداره رورفقا. و کسایی میان اینا حرفها رو میزنه من دارن تو فضای مجازی میان دنبالفالوور جمع کردنن دنبال اینان که یه چهار تا بازدید کننده بیشتر داشته باشن تاا اینا لقد به من اون مثالش رو نمیزنن لقد به اونجا گربه هم نزده تا تاالا یه چکم نخوردندارن این حرفها رو میزنن. ما دیگه اونجا بودیم دیگه امیر حسین رو این ویلچری که هستش اونجا حالا ما گاز ترمز دستی کنار بچا پا به پای بچا تا روز آخر ما وایسادیم جنگیدیم مقاومت کردیم و صلاح بر این بودش که ما برگردیم و کشوری که سقوط کرده کشوری که کشورش و دولت مردانش و ارتشش فروختن زدوند کردن شما با هیچ به قول معروف نیروی پیاده نظامی نمیتونین اونجا رو حفظ کنید ما باید عاقل باشیم و صبور باشیم الحمدلله بچه ها حفظ شدن برای معرکه های بزرگتر ما این ظهور امام زمان نزدیک باشه ایشالله این بچه ها جونشون هدر رو نره علکی برای چی وقتی که کشورشو فروخته وقتی که زد و بند کرده وقتی که ارتش کنار شما نیست بچه ها برای چی باید اونجا باشن تیکه تیکه بشن کی گفتم چی؟ چه قانونی چه با منطقیه که ما خوا اینطوری کنیم از اون طرف ما الان از اون طرف کشور خودمون الان دولت شما دارید می‌بینید دیگه الان دلار وضعیت اینجوری اقتصادی الان اینجوری خدمت شما عرض کنم که برق رو مختار قطع کردن از می‌خوام نمی‌دونم بنزین رو گرون کنن الان دنبال یه جوری هستن که خواسته و دنبال نارضایتی مردم کشور خودمون ببین سید حسن نصرالله چی گفته بوده بودش که خدا رحمتش کنه شهید مولا فرمود بود که آقا سن لبنانو بزنن داغوم كنا اصلا ما همه شهید بشیم ولی یه تیر سمت جمهوری اسلامی نره جمهوری اسلامی حرمه مگه حاج قاسم و جمهوری اسلامی حرمه کشور خودمون مردم غیور خودمون مردم خدمتشون شهید پرور خودمون ما باید صبر داشته باشیم عجله نکنیم و ما باید فقط جا پای آورسدلی خامنه‌ای بذاریم همین کلام ایشون هر جا قدم گذاشتمو قدم بذاریم هر جا به ما دستور داد اونو انجام بدیم از اون طرفم ما مطالبه میکنیم آقا بچه های مدافع حرم اما از طرف خانواده های شهدا دارم این حرفو میزنم به نیابت از تمام جانبازا تمام خون دلخردای مدافع حرم عرض میکنم ما از دولت مردان اون از نیروهای مسلحمون از فرماندهانمون درخواست داریم وعده صادق سو انجام بدن تو دهن این اسرائیل بزنن که اینجوری گستاخانه داره میتازونه و میزنه درب داغون میکنه به کشور ما حمله کردن بسم الله بگیم نترسیم ما همه پشت سر شما هستیم آقا وعده صادق سو بزنیم به قول آقای حسن عربی داداشم حاجی زاده قلب من یا آره حسن آقا خیلی قشنگ میگه من این کلیپاشو نگاه میکنم آجیزاده بزنید آقای دولت مردان ما بزنید ماها پشتر شما هستیم از اون طرف هم رفقا به زودی زودی یعنی دارید می‌بینید اخبارو دیگه دشمن ما توی سوریه به جون هم میفتن چنان کشتاری از هم بکنن همین تحریر و شامی ها همین سر خلافت با ابو وکبغدی یاتونه یا چه کار کردن اول داعش بودن دیگه بعد جدا شدن چند تا فرقه شدن بعد نصره شد نمی دونم داعش جدا شد اینا با هم جنگ دارن ما اونجا میدیدیم از این روستا به اون روستای مسلحین با هم دعوا میکردن جنگ می حالا که الان اومدن حکومت رو بخوان دستشون بگیرن اولن که فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، اسرائیل نخواهد گذاشت اینا آب خوشا گلشون پایین بره. اینا با هم درگیر میشن. الان اسرائیل اومده میخواد وارد دمشق بشه. یعنی جوری از هم دیگه اینا میکشن تو آینده شما میبینید که چقدر اینا دشمنان ما از هم کشته می میگیرن. و السلام علیکم یه صلوات هم بفرستید هر جا هستید. محمد و